خصل سوم. این ساختمون فرقیه قبلا استفاده دیگه ای ازش میکردیم اما بعدا فهمیدیم که این قسمت خونه بیشتر به درد ویل میخوره چون فقط یک طبق است این هم اتاق اضافی که در صورت لزوم نیتن از اون استفاده میکنه اول به کسی نیاز داشتیم که بیشتر اوقات اینجا بمونه خانم ترینر با چابکی در راه رو قدم برمیدشت با دست به اتاقها اشاره میکرد. دیگر پشت سرش را هم نگاه نمیکرد. کفش پاشن بلندش بر سرامیک تخت تخت صدا میکرد. احیانان انتظار داشت همه حرفایش را به خاطر بسپارم. کلید اتومبیل اینجاست. بیمتام هم کردم. فرض رو بر این گذاشتم که جزییاتی که به ما گفتی کاملا درسته. در واقع بده اعتماد کردم. احتمالا نیتن میتونه یادت بده که با سطح شیبدار کنی. باید سطح شیب داره ماشین و کار بندازی تا ویل سوار شه بقیشو خود ماشین انجام میده هرچند این روزا اصلا دوست نداره بیرون بره گفتم هوای بیرون کمی سرده خانم ترینر توجهی به حرفم نکرد میتونی برای خودت توی آشپزخونه چای و قهوه درست کنی همه وصالشو میذارم توی کابینت حمامهم اینجاست در رو باز کرد و من بالابر فلزی و پلاستیکی سفید را دیدم که بالای توالت جمع شده است توش فضای باز نمناکی بود صندلی چرخدار جمع شدهی هم کنارش بود داخل قفصه شیشهای کنج دیوار کپه مرتبی از بسته های نایلون کشیده بود که من از آنجا نمی توانستم تشخیص بدهم چه هستند بوی مواد ضد عفونی کننده از هر طرف می آمد خانوم ترینر در حمام را بست، و به طرف من برگشت. دوباره تکرار میکنم که ویل هیچ وقت نباید تنها باشه. پرستر قبلی یه بار چند ساعت قیب رفته بود ماشینشا به بره تعمیرگاه. ویل هم در قیاب اون به خودش آسیب رسونده بود. آب دهانش را گرد داد. گویی هنوز هم با یادآوری این خاطره به هم میریخت من جایی نمیرم. البته به استراحت نیاز داری فقط میخوام روشن که نباید بیشتر از ده یا پونزده دقیقه تنهاش بذاری اگه کار واجب پیش اومد میتونی زنگ آیفونو بزنی شاید همسرم استیون خونه باشه یا به تلفن همراه هم زنگ بزن. اگه به مرخصی احتیاج داشتی ممنون میشم که خبرشو زودتر بدی پیدا کردن جانشین همیشه کار راحتی نیست بله خانم ترینر در قفسه داخل سالن را باز کرد حرف زدنش مثل کسی بود که متن سخندانی رو خوب تمرین کرده و حالا دارد از بر میگوید. گوید. بودم بدنم قبل از من چند پرستار اینجا کار کردند. وقتی که ویل سرش گرمه ممنون میشم به کاره خونه برسی و سنه ملافه جارو باقی از اینجور کارا. وسایل شستشو زیر لگن زرف شویه. ویل گاهی دوست داره تنها باشه. کمی که بگذره دست تو میاد که ارتباطتون چطور باشه؟ خانوم ترینر به لباسم نگاه کرد. طوری که انگار دفعه اول است میبیند. جلیقه پرزدار پوشیده بودم که پدرم میگفت شبیه شطر مرغ استرالیایی میشدم. تلاش کردم لبخند بزنم. اما کار سختی بود. انتظار دارم با هم کنار بیاید. دلم میخوا تو رو یه دوست ببینه تا پرستاری که مزد میگیره. اینجوری بهتره. حتما. م به چه کارایی علاق فیلم میبینه، گاهی هم رادی گوش میکنه یا موسیقی؟ یکی از اون نوع دیجیتالی رو داره اگه خودش نزدیک باشه میتونه روشن و خاموش کنه انگشتاش کمی حرکت دارن گرچه نمیتونه چیزی رو با دستش بگیره؟ خوشحال شدم اما اگر او فیلم و موسیقی دوست دارد آیا واقعا میتوانیم با هم تفاهم برقرار کنیم؟ یک بار خودم و این مرد را دیدم که داریم فیلم کمدی هالیوود نگاه میکنیم و میخندیم من دارم جارو میکشم می کشم و او هم به موسیقی گوش می دهد. شاید واقعا همینطور هم, هم میشد شاید سراخر با هم دوست می شدیم. سؤالی نداری؟ نه. به ساعتش نگاه کرد و گفت. بیا بریم و معرفید کنم. نیتن لابو تا حالا لباس تنش کرده. پشت در اتاق ایستادیم و خانوم ترینر در زد. ویل، اینجایی؟ دوشی زکلک رو آوردم تا تو رو ببینه. هیچ جوابی نیامد. ویل؟ نیتن؟ کسی با لحجه قلیز نیوزلندی گفت. خانم ترینر، لباسشو پوشیده. خانم ترینر در را باز کرد. اتاق نشیمن ساختمان فرعی بسیار بزرگ بود. یک دیوارش تراسر در شیشه‌ای داشت و به فضای سبز بیرون باز می شد. بخاری هیزامی کنج اتاق بود. درست روبروی تلویزیون صفه تخت یک کاناپه بزرگی کرم رنگ دیده میشد. روکش پشمی هم کفه کاناپه را می پوشند. اتاق را خیلی با سلیقه درست کرده بودند. یک اتاق مجردی به سبک اسکاندیناوی. سندلی چرخدار سیاهی وسط اتاق دیدم. بالشتک کف و پشتیش چرمی بود. جاپایی صندلی چرخدار قابل تنسیم بود. همین که قدم به داخل اتاق گذاشتیم، مرد روی صندلی چرخدار با موهای کرکمانند و ژولیده به ما نگاه کرد. نگاه به هم افتاد. و بعد از لحظه مکس ناله وحشتناکی از دهانش خارج شد. سپس لبهایش چرخید و صدای روبانگیزی از آن بیرون آمد. حس کردم مادرش میخکوب شد. فیل نکن مرد حتی به طرف مادرش نگاه نکرد دوباره صدای عجیب و غریبی از جای در قفص زینهش بیرون زد صدای وحشتناک و دردناکی بود تلاش کردم حالت عادی خودم را حفظ کنم مرد با حالتی آشفته به من زلزد قیافهی در هم کشید و سرش کج و در شانه فرو رفت قیراتی به نظر می رسید یک جورایی عصبانی بود کیفم را چنان محکم گرفته بودم که بند انگشتانم سفید شده بودند. ویل، لطفاً این کار را نکن. صدای مادرش کمی عصبی بود. با خودم فکر کردم، وای خدایا، من از او دست بر نمیایم. آبدهانم را محکم گرد دادم. نگاه مرد همچنان به من بود، گویی منتظر بود من قدم اول را بردارم. من لو هستم. ساکت شدم صدایم بد جوری میلرزید نمیدانستم که باید دست بدم یا نه یه دم آمد نمیتواند نسم را بگیرد در عوض برایش دستگان دادم و گفتم لو مخفف لویزاس سپس در اوج تعجب دیدم حالتش عوض شد سرش روی شان صافی استاد ویل ویلترینر با آرامش به من ذل زد و خفیفترین لبخند دنیا بر لبانش ظاهر شد گفت صبح بخیر دوشیزه کلارک مثل اینکه پرستار جدیدم هستید نیتن جا صندلی چرخدار را تنسیم کرد و همینطور که سرپا میشد سرش را تکان داد و گفت آقای ویل بدی خیلی بدی برد پرستار لبخندی زد و دست ستبرش را به طرف من دراز کرد شلوول دست دادم نیتن خود را خون سرد نشان می داد متاسفانه روزی اومدی که ویل سخت و حال و هوای کرستی به عادت میکنی نگران نباش فقط هارتو پورت میکنه خانم ترینر سلی به دور گردنش را با انگشتان باریک و سفیدش گرفته بود و در امتداد زنجیر تلاییش به جلو و عقب حرکت میداد. حالتی که نشان نشنیدد است قیافش خوشک و جدی بود تنها تو میذارم تا با هم آشناشید اگه به کمک نیاز داشتی با آیفون خبر بده. نیتن برنامه ی روزانه ی ویل رو بهت میگه و وسایلش رو نشون میده. مادر خودم حی حاضر هستم احتیاجی نیست جایی من حرف بزنید. مغزم هنوز از کار نیفتاده. بله درست. اما اگه میخوایی بد کنی همون بهتر که دوشیز کلارک مستقیم با نیتن حرف بزنه. متوجه بودم که وقتی مادرش حرف میزند به او نگاه نمی کند. نگاهش به زمین بود. حدود سه چهار متر دورتر. دوشه کلارک، امروز نمیرم سر کار و از خونه به کارام رسیدگی میکنم. در نتیجه وقت ناهار میام. بسیار خوب. صدایم به جیغ شبیه بود. خانم ترینر رفت. کسی حرفی نزد و در سکوت به صدای پای خانم ترینر که در راه رو قدم برمی‌داشت و به طرف بخش اصلی خانه میرفت گوش دادیم. بی‌نشكال نداره من برم دروغه رو نشونه دوشیزه کلارک بدم تلویزیون روشن کنم یا میخوای آهنگوش گوش کنی نیتن لطفاً رادیو روشن کن کانال چهار حتما به طرف آشپزخانه رفتیم خانم تیم میگه تجربه در زمینه کار با افراد فلش نداری درسته بله بسیار خوب امروز از زیاد سخت نمیگیریم. پوشه اینجاست که تمام چیزا که باید درباره برنامه روزانه ویل بدونی داخلش نوشته شده و همینطور شماره تلفن‌های اضطراری. تو سیم کنم وقت کردی با دقت بخون که البته فکر کنم وقت کنی. نیتن کلیدی از کمرش بیرون آورد و کابینتی را باز کرد. پر از جعبه و قوطی‌های کوچک پلاستیکی دارو بود. مسئولیت اینا با منه ولی برای مواقع اضطراری بهتره جاشونو بدونی. جدولی اونجا به دیواری که میگه روزانه چه چیزایی باید به اون بدی. هر وقت چیز اضافه دادی باید همونجا بنویسی. با دست شرکت. اما بهتر دست کم توی این مرحله همه چیزو با خانوم تیر کنی. نمیدونستم قرار داروها شو هم کار سختی نیست. خودش تقریبا میدونه چه چیزایی رو باید بخوره. اما به کمی کمک نیاز داره تا بتونه بخوره. ما معمولا از لیوان مخصوص استفاده میکنیم که شبیه ناودونه. اما قرص ها رو با این هاون آسیاب کنی و توی لیوان آب بریزی. یکی از داروها را برداشت. فقط توی داروخانه این همه دارو دیده بودم. دو تا قرص برای فشار خونش میخوره. این یکی موقع خواب فشارش پایین میاره، این یکی هم وقتی از خواب بلند شد بالا میبره. اینا برای گرفتگی از داله که گاهی نیاز میشه. یکی پیش از ذور، یکی بعد از ذور. این قرصو کچیکن و راحت خوردشون میده. این هم برای گرفتگی مسانه. این هم برای برگشت دستیده معده. گاهی وقت و بعد از غذا که اذیت میشه، باید این قرصو بخوره. این هم زده حساسیتی که صبحها میخوره. این هم اسپری بینی. اما اغلب قبل از اینکه برم خودم ترتیبشو میدم. پس نگران نشو. اگه درد داشت پاراستامول میدم. قرص خواب هم داره ولی چون اختاویشو در طول روز عوض میکنه، سعی میکنیم کمتر بدیم. گوتی دیگری برداشت. این آنتیبیوتیک رو هر دو هفته یک بار برای تعویز سون میخوره. خودم میدم مگه این که نباشم. در این صورت دستورش رو دقیق می نوسم. خیلی قویه. جبه دستکش لاستیکی هم هست برای مواقعی که لازم شد تمیزش کنی. یه قوطی کرم هم هست برای وقتی که زخم شد. اما از وقتی تشک مخصوص زخم بستر تاگه کردیم خیلی بهتر شده. من همانطور بودم. نیتن دست در جیبش کرد و کلید دیگری بیرون آورد و دستم داد. خب. این هم کلید یدک. به هیچ کس نباید بدی. حتی خود بیل. متوجه شدی؟ جون تو و جون این کلید. مثل دوتا چشمات ازش مراقبت کن. آبه دهانم را گرد دادم و گفتم. خیلی چیزا باید یادم بمونه. آه. همه رو نوشتم. اینوز فقط باید یادت بمونه که درگز ضد پاسم بدی. شماره تلفن هم رو هم نوشتم برای وقتی که نیاز داشتی با من تماس بگیری. زمانی که اینجا نیستم درس میخونم. برای همین ترجیح میدم تماس زیادی با من گرفته نشه. اما راحت باش تا وقتی به همه چیز تسلط پیدا کنی. به پوشه مقابلم چشم دوختم. حس میکردم سر جلسه امتحانی نشستم که آماده را ندارم. ام، اگر نیاز به دست شیده چطور یاد آن بالابرهای مخصوص معلولان افتاده بودم. مطمئن نیستم بتونم. میدونی که چی میگم. که بلندش کنم. تلاش میکردم وحشتم را بروز ندم. نیتن سرش را تکان داد. اصلا نیازی به این کار نیست. سون داره. موقع نار خودم عوضش میکنم. تو برای کاری فیزیکی اینجا نایمدی؟ پس برای چه کاری اینجا هستم؟ نیتن به زمین چشم بعد به من نگاه کرد باید روحیش رو تغییر بدی کمی غغ با توجه به شرایطش قابل درکه. مجبور کمی پوست گلف باشی رفتار مسخره امروز صبح دیدی با این کارش آدم و کفری میکنه برای همین حقوق خوبی میدن؟ نیتن دستی به شان هم زد و گفت آره ولی نه این قضیه که غذای مجانی بدن نه؟ بدنم از این حرف لرزید. فیل پسر خوبیه. احتیاج نیست خیلی دست و از رفتار کنی. مکس کرد. بعد گفت. من که دوستش دارم. طوری این حرف را به زبان آورد انگار فقط خودش بود که دوستش داشت. دنبالش به اتاق نشیمن رفتم. صندلی چرخدار ویل حالا کنار پنجره بود. پشتش به ما و به بیرون چشم دوخته بود. به رادیو گوش میداد. ویل؟ کارم تموم شد. قبل از رفتن به چیزی نیاز داری؟ نه. ممنون نیتن به دوش کلار که نازنیم میسپارمت. رفیق، موقع نهار میبینمت. به پرستار خوش برخوردش که داشت کت میپوشید چشم دوختم. وحشتم هر لحظه بیشتر میشد. نیتن چشمکی به من زد و گفت: بچا باشگ بکسره. بعد اتاق را ترک کرد و سط اتاق ایستاده بودم دستم توی جیب بود نمیدانستم چه کنم بیل ترینر همین همینطور به بیرون زل زده بود انگار نه انگار من آدمم که آنجا ایستادم سکوت آزار دهنده شده بود بالاخره دهان باز کردم و گفتم یه فنجون چای میل دارید. اینم دختری که از راه چای درست کردن امرار معاش میکنه نمیدونم چقدر طول میکشه تا تو مهارتاتو نشون بدی نه نمیخورم ممنون قهوه چطور؟ دوشیزه کلارک الان اصلا نوشیدنی داغ نمیخوام میتونید لوس ادام کنید بیشتر دوست داری؟ پلکی زدم دهانم کمی باز شد بعد بستم بابا همیشه میگفت این کارم بیشتر از آنچه هستم کدن نشانم میدهد. خب چیز دیگه ای دارید؟ به طرفم برگشت و نگاهم کرد. از ریش صورتش پیدا بود چند هفته اصلاح نکرده است. نمیشد چیزی از چشمانش خواند. دوباره صورتش را برگرداند. راه افتادم. میرم ببینم چیز برای شستن است. از اتاق بیرون آمدم. قلبم تاپ تاپ میزد خانه رفتم و با خیال راحت گوشی تلفن همراه هم را درآوردم و برای خواهرم پیام فرستادم. نوشتم وحشتناکه از من بدش اومده. چند لحظه بعد جواب آمد. خواهرم نوشته بود. فقط یک ساعت شده که اونجایی ای آدم بی تحمل مامی و بابا نگران خرج خونه هستند. به چسب و به مزدش فکر کن. بوس. گوشی تلفن همراه همراه خاموش کردم و با تولوپایم هایم انداختم. سراغ رخچه توی حمام رفتم. یک چهارم ماشین لباسشوی را پر کردم. دقایقی هم صرف خواندن دستورات ماشین کردم. نمیخواستم دستور اشتباه به ماشین بدم یا کاری بکنم که باعث شود ویلی یا خانوم ترینر دوباره طوری به من نگاه کنند که انگار احمق هستم. ماشین را روشن کردم و همانجا ایستادم. تلاش میکردم ببینم دیگر چه کاری باید انجام بدهم. جاروبرقی را از کمد داخل سالن آوردم. راهرو و دو تا خواب را جارو زدم. تمام مدت هم داشتم با خودم فکر کردم اگر پدر و مادرم مرا میدیدن حتما می‌خواستند از من عکس یادگاری بگیرند. حتی نمی‌زدم نیت نقل حاضر نباشد. با خودم فکر کردم که اصلا نمیشود به او ایراد گرفت. لحظاتی مردد پشت در اتاق ویل ایستدم. بعد خودم را قانع کردم که آنجا هم مثل هر جای دیگر به جارو احتیاج دارد. در یک طرف اتاق قفصهی به دیوار نصب شده بود که رویش هم حدود بیست قاب عکس بود. همینطور که سرگرم جارو کشی بودم به خودم اجازه دادم و نگاهی به عکس ها انداختم. مردی داشت از سخره بالا می رفت. دستش مثل شمایل حضرت مسیح باز بود. در عکس دیگر مردی را در جایی مثل جنگل دیدم که حدس زدن باید فیل باشد. دوباره عکس دیگری از او که وسط گروهی از دوستان مست نشسته بود. مرد همه پاپیان زده و لباس رسمی پوشیده بودند. دستشان هم روی شانهی هم بود. در عکس دیگر داشت اسکی می کرد و از شیبی سرازیر بود. کنارش هم دختری بود با عینک سیاه و موهای بلند تلایی. قابعکس را برداشتم تا بهتر ببینم. ریشش را از ته تراشیده بود. حتی زیر نور تند هم صورتش درخشندگی خاصی پیدا کرده بود که باعث میشد پولدارها سالی سه دفعه به تعطیلات بروند. شانههای پهن و عضلانی داشت، طوری که حتی در لباس اسکی هم پیدا بود. قاب عکس را با احتیاط سر جایش روی قفسه گذاشتم و پشت تخت خواب را جارو کشیدم. عاقبت جاروبرقی را خاموش کردم. همین که خواستم از برق بکشم و سیم را جمع کنم، از گوشه چشمم متوجه حرکتی شدم. از جا پریدم. جیغ ضعیفی از دهانم خارج شد. فیلترینر در آستانه در به من زل زده بود. کرشبل. <تص Disney> دو سال نیم پیش. سرخ شدم. گفتم. ببخشید. من فقط میخواستم... م... فقط میخواستی اکسامو ببینم. لابد با خودت فکر میکنی چقدر میتونه وحشتناک باشه که ورق برگرده و کسی که چنین زندگیی داشته حالا معلول بشه. به شدت سرخ شده بودم؟ نه. هر وقت کنچ دوباره گل کرد بقیه عکسام توی کشوی آخره. بعد دوباره زمزمه کوچکی به گوش رسید. سندلی چرخدار دور زد و ویل نپدید صبح، کش پیدا کرده بود و، زمان قصه سپری شدن نداشت. گویی میخواست سالها طول بکشد. به یاد نداشتم که دقایق و ساعت چنین کند و خسته کننده بوده باشند. زور خودم را میزدم کاری پیدا کنم و سرم را گرم کنم. قفسه‌ها را گردگیری کردم و از این جور کارها انجام دادم. حتل امکان سعی کردم کمتر به اتاق نشیمن بروم، میدانستم از ترسم است. ولی برایم مهم نبود ساعت دوازده و نیم نیتن از راه رسید با خودش هوای سرد بیرون را آورده بود ابرو بالا داد و گفت عوضا خوبه؟ در طول زندگیم به ندرت پیش آمده بود که از دیدن کسی تا این حد خوشحال شده باشم خوب آلی حالا نیم ساعت وقت آزاد داری. تو این ساعت روز من آقایتی کارهایی دارم که باید انجام بدیم. سری پالتویم را برداشتم. از قبل قصد نداشتم برای نهار بیرون بروم، اما حالا نفس راحتی کشیدم که از این خانه بیرون میرفتم. یقه پالتو را بالا دادم. کیفم را رو رو روی شانه آویزان کردم و با قدمهای تند در مسیر ماشین رو به حرکت درآمدم. گویی واقعا مقصدی دارم و از رفتن به جایی را کردم. نیم ساعت در خیابان‌های اطراف پرسه زدم. توده نفس‌های گرمم بشالی که محکم بسته بودم دمیده می‌شد. در این قسمت شهر خبری از کافه نبود و کافه با تردبان هم که بسته شده بود. قلع خلوت بود. نزدیک‌ترین غذاخوری رستورانی بود که آبجوی گران قیمت سرو می‌کرد. جایی که شک داشتم پولم می رسد تا نوشیدنی بخرم. و البته اگر سرم خودم به تنهایی سری غذایم را بخورم. توی پارکینگ اوتوموبیل های گران قیمت و شیکی بود که تازه نمره شده بودند. توی پارکینگ قلعه ایستادم. حواسم بود که در میدان دید گران تا هاوس نباشم. شماره خواهرم را گرفتم. سلام. میدونی که سر کار نمیتونم با تلفن حرف بزنم. تو که هنوز اونجایی. آره؟ نه. فقط میخواستم یه صدای دلنشین بشنوم. یعنی انقدر بده؟ بگو بدترین. از من بدش اومده. طوری به نگاه میکنه که انگار آشغال توی کوچه هستم. حتی چایم هم نمیخوره. خودم ازش قایم میکنم. باورم نمیشه این چیزا رو میشنوم چطور؟ فقط باش حرف بزن. با صدای بلند. البته قابل طرحمه حسیر اون چرخ داره لعنتی شده. احتمالا کم کم موندنت میشه. فقط باش حرف بزن ازش شناخت پیدا کن به نظرت بدترین چیزی که ممکنه پیش بیاد چیه؟ نمیدونم اصلا مطمئن نیستم بتونم دوم بیارم به مامی نمیگم بعد یه نصف روز تصمیم گرفتی کارتو ول کنی لو اونا نمیتونن پولی به تو بدن نمیتونی کارتو ول کنی؟ از عهده خرج خونه بر نمیایم که تو بتونی کارتو ول کنی. حق با او بود. احساس کردم چقدر از خواهرم متنفرم. سکوت کوتاهی برقرار شد. صدای ترینا به طرز غیرعادی دوستانه بود و این واقعا نگرانم کرد. معلوم بود خودش هم میداند بدترین شغل دنیا را دارم. گفت: ببین، فقط 6 ماه که بیشتر نیست. این شیش ماه هر جوری هست سر کن تا سابقه کاری خوبی داشته باشی و بتونی کاری که واقعا دوست داری پیدا کنی اصلا اینجوری بهش نگاه کن دستکم اینکه که شبکاری تو کارخونه کنسرو جوجه نیست درسته؟ شبکاری تو کارخونه جوجه در مقایسه با این کار مثل مسافرت رفتنه اولو من دیگه باید برم بعدم میبینمت. دوست دارید بعد از روح جای بریم؟ اگه بخواید میچنیم با ماشین بریم بیرون نیم ساعتی میشد که نیتن رفته بود خودم را سرگرم شستن ظرف و ظروف کردم و تا جایی که ممکن بود لفتش دادم با خودم فکر میکردم اگر یک ساعت بیشتر در این خانه ی سود و به منم دیوانه میشدم صورتش را به طرف من برگرداند خود جای را در نظر داری؟ ن... نمیدونم میخواید گشتی تو اطراف شهر بزنی؟ خودم گاهی این کار را میکردم میخواستم مثل ترینا باشم ترینا از آن دست است که بی و قابل هستند هیچ کس هم نمیتواند پا توی کفشش کند گفت اطراف شهر داشت بررسی میکرد چه چیزایی میبینیم؟ درخت؟ آسمون؟ نمیدونم معمولا چیکار میکنید صدای خودم به گوشم شاد و حرفه‌ای میرسید دوشیزه کلارک کاری نمیکنم دیگه هیچ کاری نمیتونم بکنم همینطوری میشینم من فقط نفس میکشم گفتم خب به من گفتن که شما اتومبیلی دارین که میشه صندلی چرخدار رو پشتش سوار کرد <تصفح> نگرانی که اگه هر روز استفاده نشه کار تو از دست بدی نه اما داری بهم میگه میگی که باید برم بیرون؟ فقط فکر کردم. فکر کردی یه گردش کوچولو برام خوبه؟ هوای تازه؟ فقط سعی کردم چیز کلارک زندگی من با گردش تو اطراف استوردفولد هیچ تغییری نمیکنه؟ سپس صورتش را برگرداند. سرش در شانه فرو رفت دلم میخواست بدنم آیا واقعا راحت است؟ ظاهرا موقع مناسبی برای پرسیدن نبود ساکت و خاموش نشست. میخواید کامپیوترتونو بیارم. چی؟ لابد فکر کردید که عضو گروه حمایت از معلولانم. نفس عمیقی کشیدم. زور خودم را زدم تا آهنگ صدایم حاکی از اعتماد به نفس باشد. خب. فکر کردم چون باید روزامونو با هم سر کنیم، شاید بهتر باشه همدیگر دیگر بیشتر بشناسیم. چیزی در چهرهش بود که مرا به تردید انداخت. نگاهش مستقیم به دیوار روبرو خیره بود و آروارش پرش عصبی داشت. ادامه دادم. قرار زمان زیادی رو کنار هم باشیم. یه روز کامل. شاید اگه به من بگید که دوست دارید چیکار کنید، از چه چیزی خوشتون میاد، اون وقت من میتونم مطمئن شم که شما از همه چیز راضی هستید. این بار سکوت عذاب‌آور بود. اسم کردم صدایم را در خود فرو برده است. دست و پایم را گم کرده بودم. ترینا و توصیه فراموش شده بودند. سرانجام صندلی چرخدار به حرکت درآمد و آرام مقابل من استاد. دوشیزه کلارک. اطلاعاتی از شما به من دادن. مادرم میگه آدم خوش صحبتی از دید. طور این حرف را زدگویی مصیبت بود. میشه با هم توافقی بکنیم؟ که وقتی دورو برم هستی ساکت باشی آب دهانم را قورت دادم حس کردم صورتم برا فروخته شده است بعد وقتی توانستم به حرف بیایم گفتم بسیار خوب من توی اشباز هستم اگه کاری داشتید صدام کنی. فعلا نمیتونی کارتو ول کنی. روی تخت به پهلو دراز کشیده بودم و مثل دوران نوجوانی پاهایم را دراز کرده و به دیوار تکیه داده بودم. بعد از شام به اتاقم آمدم و همینطور روی تخت دراز کشیدم. کاری که مدت ها نکرده بودم. بعد از تولد توماس اتاق بزرگ مال ترینه شد و قوطی کبریت اتاق من. اتاقم آنقدر کوچک بود که وقتی آدم بیشتر از یک ساعت آنجا میماند، دچار حراس از فضای بسته میشد. با این حال دلم نمیخواست طبقه پایین این کنار مادر و پدر بزرگ بمانم. مامی با نگرانی به من چشم بدوزد و این حرف را بزند. عزیزم بهتر میشود. یا هیچ کاری روز اولش خوب نیست. مادرم طوری حرف میزد که انگار خودش در این بیست سال گذشته تجربهاش را داشته. در من احساس گناه ایجاد میکرد در صورتی که واقعا کاری نکرده بودم خدای من ترینا من نگفتم کارمون ویل میکنم حوض وخیمتر از این است. خیلی بدبخته آره خب دست و پاش حرکت نداره بایدم بدبخت باشه نه برای این نمیگم به این خاطر که زبون نیشداری داره همه کاراشم از روی عمده هر بار حرفی میزنم یا پیشنهادی میدم نگاه عاقلند در صفی به من میکنه یا حرف میزنه که اسم میکنم دو سال بیشتر ندارم لابد حرف طرف احمقانه ای فقط باید به هم عادت کنید بابا حرف ای حواسم هست فقط گفتم دوست دارید بریم بیرون و کمی بگردیم یا یه فنجون چای میل دارید شاید اولش با همه این اینطور رفتار میکنه تا بعد که مطمئن بشه دور و برش نمیپلکی شرط میبندم صد جور آدم اومد و رفت حتی دوست نداره کنارش توی اتاق باشم. کاتینا. گمون نکنم بتونم تا آخرش دووم بیارم. راستش رو بخوای واقعا نمیتونم. اگه میومدی خودت میدیدی میفهمیدی چی میگم. ترینا جوابی نداد. فقط لحظه ای به من نگاه کرد. بلند شد و نگاهی در کرد. گویی میخواست مطمئن شود کسی پشت در نیست. بعد گفت. دارم فکر میکنم برگردم دانشگاه. لحظاتی طول کشید تا توانستم خودم را با تغییر موضوع صحبت تطبیق بدم. گفتم. خدای من. اما... تصمیم دارم برای شریعش وام بگیرم. به خاطر توماس هزینه تحصیلی هم میدن. دانشگاه هم تخفیف میده چون... شانه بالا انداخت. کمی دست باچه به نظر میرسید. فکر میکنن میتونم دانشجوی ممتاز بشم. یکی از دانشجوهای مطالعات بازرگانی مردود شده. در نتیجه میتونم برای نیم سال بعدی برم. پس توماس چی میشه؟ توی دانشگاه مهده کودک هست. در طول هفته میتونیم تو آپارتمانی که بابتش کمک مالی میکنن بمونیم. آخر هفته میتونیم بیایم خونه. سنگینی نگاهش را روی خودم حس میکردم. نمیدونستم با چهره گر گرفتم چه کنم. حتی نیاز دارم که دوباره مغزم و به کار بندازم. گلفروشی فقط دستام رو به کار میگیره. دوست دارم درس بخونم. دوست دارم خودم بکشم بالا. پدرم در اومد از بس با آب کار کردم و دستام یخ زد. هر دو به دست هایش زدیم که در هوایی بسیار گرم خانه من هم تهرنگ صورتی داشت. اما... لو من دیگه کار نمیکنم نمیتونم کمک خرج خونه باشم. من حتی به کمکشونم احتیاج دارم معذب به نظر میرسید که این حرف را می زند بیافش وقتی سرش را بالا گرفت و به من نگاه کرد پوزش در خود داشت صدای خنده مادرم از طبقه پایین به گوش رسید داشت تلویزیون تماشا می کرد صدایش را میشنیدیم که برای پدربزرگ بزرگ توضیح میداد اغلب فیلم را برایش تعریف می‌کرد با اینکه همیشه به او تذکر می‌دادیم که نباید این کار را بکند نمیدانستم چه بگویم آرام آرام و به طرز اجتناب ناپذیر به عمق حرفهای خواهرم پی برده بودم احساس قربانیان مافیا را داشتم و دست و پای خودم را بد جور بسته می‌دیدم ای ندارم دلم می‌خواد توماس تو شرایط بهتری زندگی کنه یعنی هر دوی ما باید تو شرایط بهتری زندگی کنیم تنها راهی که میتونم خودم بالا بکشم رفتم به دانشگاهه. من کسی مثل پاتریک ندارم فکرم نکنم پیدا کنم از وقتی توماس به دنیا آمد کسی سراغم نیومده خودم باید نهایت تلاشمو بکنم با تکانه سر کردم لو لطفا درک کن تا آن روز خواهرم را اینطور ندیده بودم سرم را بالا گرفتم و به زور لبخند زدم صدایم وقتی شروع به حرف زدن کردم اصلا شبیه به مال خودم نبود خوب همینطور که گفتی فقط باید بهش آدت کنم چند روز اول سخت مگه نه